تعداد عبیات غزل ها و طبق چاف اول نوشتم روی چاپ دوم هم همان باشه. صد غزل اول هشتد و غزل اول هزار شیستد صد اول, اول دو هزار و اول سه هزار و و و از این قرار حد متوسط بیت هر قزل هشت, هر هشت از این قرار حد متوسط بیت هر قزل هشتی هشتاد یعنی کمتر از هشت و یک بیت ترتیب از رابط اکنه های درست غزل میشه اضافه مجموع باقی انواع شعر به استثنای غزل های مشکول. یعنی ترکیب بند، قصیده ها، قصیده عربی، مصنبی ها، قطعات، روبایی ها به علاوه روبایی های الحاقی که تنها در یک نسخه آمده و قطعه هایی که مسلم از دیگری است مانند قطعه معزی، ولی در متن آمده است. خلاصه اشعار متن جلد دوم نیز 600 بیت. و بدین قرار در چاپ و استاد در مت۴۶ و۳ و۸ بیت به عنوان شعره حافظ آم نیست. که باز بیتی چند از آن را می مورد تردید قرار. داد. گو اینکه در قذل های مشروبوط نیست بعضی غذل های نادر هست که می توان گفت از خا کل <تصفيق> بیت های جلد دوم دیبان 886 بیت است، و 260 آن قزلهای الحافی است در زن حالا و از که دکتر ریاهی این کتاب گلگشت در اندیشه و شعر حافظ منتشر کرد معلوم شده است که تقریبا تمام روایی که به حافظ نسبت میدن تقریبا تمام اون روایی مال حافظ نیست و ممکن رجوع فرم به همون کتاب دکتر محمد امی ریاهی و ملاحظه بنده یکی از مطالب دیگری که بایدان نمیدونم کتاب دکتر مرتزبی رو گفتم یا نه کتاب دکتر مرتزبی از منابع بسیار درجگیه که برای تحقیق در شعر حافظ مکتب حافظ اگر گفتم که خب دیگه تمام یک مقاله آقای بهایدین خورنمشایی در کتاب زن و زبان حافظ نوشته که انتقاد کرده از حافظ شاملو البته بدون اینکه که هیچ بد بود یعنی مطلقا اولا این رو هم من میدم برای اینکه نمونه ای باشه برای اینکه ببینید که چه خورده هایی ممکنی گرفته باشن اینا او اون رو هم من میدم که فتوکپی کنم در اختیارتون اگر آقای گرامی هم بیاد اون نوشته ناچیز بندر هم که مقدار مطالب ناقص درباره حافظ هست دلیل اینکه که میگم ناقص این است که من مجبور بودم چند تا مثلا ده تا معقول درباره بر حافظ بنویسم و هی باید میگفتم که برای راحت اقتصار اینو در عرض میکنیم برای راحت اقتصار این قسمتشو نمیکنیم برای راحت اقتصار باقیشو معذرت میکنیم بفنیم حلال زاده, زاده, زاده. بود الان صحبت این که آقای گرامی اگه بیان این مقاله ها رو میاره و عملت کرده حالا بعد این ترتیب من دیگه ندارم بریم سر کارو تا غزل چند کنده بودیم های وزیزم من که دامان ببینه فرق داره. ها تا تودون غزل کنده بود خود این شما بگو من نمرهشو میدن بس این شما بایده جانم از نه. ناخی تا؟ از تونها از چپ ما ری؟ نه نه چه روی خانده چیه؟ ما را خیال تو شکنم اینو خوندیم ما راز خیال تو چه پروای شراب است خوندیم نه یعنی باید از اینجا شروع بشن خود حدرت الی درد کنیم از اول simulations ما راز خیال تو چه پروای شراب است ما راز خیال تو چه پروای شراب است خم سر خود گ演یری که خمخان خراب است گرد همو بهشت است <تصف> خم بهشت است یا خنده‌دل استا ببیذ که بی هر شربت ازم که دهی عین عذاب این عذب به معنی شیرین و گوارا است عذب یعنی شیر. حتی شعر شیرین هم میگن شعر عذب هر شربت عذبم که دهی این عذاب بله افسوس که شد دلبر در دیله گردان تغییر خیال سخته او نقش برابر است بله بلاد شبایی دیده که ایمن نتوان بود زین سید دمادم که در این منظر خواب است لطفاین اینو ایمن بخونیم یه ایمن داریم در فارس به معنی در امن و در امنیت بودن و یه ایمن داریم به معنی دستیرات و هر دوتایش در حافظ اومده اشکالگار ایمن هر جا از حضرت موسی حرف میگه شبان وادی ایمن یعنی بیابون دست راست یمین یعنی دست راست عیمن یعنی طرف راست وادی عیمن یعنی بیابان سمت راست امیدوارم قصه موسار دانسته باشید من خیلی اینجا نمیتونم توضیح بدم شب اومده بود و دختر شوهیب هم زنش بود و گلر و عرشته بود اومده بود و زنشم بوده، بود و هوا سرد بود و بارون بود و بدبختی زنه اونجا درد زایدنش دیرد و سردش هم بود گفت شما اینجا بمونین تا من دیدی یه آتیشی آتیشی هست و گفت برم یه سر آتیش پیارم از شما گرمشون آمد به سمت آرتبه شما آمد و به کوه تو رو دید نه آتیشی نیست است و شعله سرد از توی میاد بالا و خطاب رسید بهش که یا موسا فخلا نلک نه لینه توی هر بیرست این نکه بالبادل مقدس تو. تو در حضور خدا هست بعدم با خداوند با او صحبت میکنه در یه چنین موقع بسیار بسیار مناسبی عرض کنم که خلعت پیغمبری رو به دوش موسا میاندازه. اندازم بعدم من نکته دیگری که از استادم هست اینجا باید بگم که میگه که وقتی که موسا شرف گفتگوی با حضرت رب در رو دریافت و با خداوند مشکول گفتش شد، خداوند ازش پرسید که ما تلکب یمینه که یا موسا این, این که دست راسته چیه جواب داد که اینا متن قرآن ها جواب داد قاله هیه احسایه این احسا اتوکه و علیه ها بهش تحکیه و احوش شبه ها علاقه نمی دوستاندام باش میروند ولی افیه ها معارب و اخرام برای من فایده های دیگر هم داره مرموم استاد ما هم که آدم شرف گفتگو با خداوند را پیدا کند بعد با خدا در باره فواعد اصا حرف بزنه <تصفيق> البته این ایرادم از حضرت استاد نبود ایشون هم از بعضی تفسیر اینجور گفته بودن و ایراد کرده بودم که چطور موسا عقلش نرسیده که در حضور خداوند راجع فواعد اصا حرف نزنید بعد جواب بده بودن بعضی که نه این اینجور نبوده او میخواسته لذت مقالمه با خداوند را هر چه طولانی تر کنه این است که هی سخن کشه به هر وادی ایمن یعنی بیاون دست راست ولی ایمن ممال آمنه. امن امن می‌دون که در فارسی تمایلی هست الفا رو به یه بدل کنه حجاب میشه حجیب رکاب میشه رقیب عطاب میشه عتیب همین توحافظ هم هست تو شهرهای قدیمت هست اینو رو براشید یه بی تربیتیه بهش میگن اماله این قاعده رو میگن اماله و اون کلمه که الفش به یا تبدیل میشونش میگن ممال آمن اسم فاعل عربی شده ایمن یعنی کسی که در امن ایمن به معنی دسته پس شوان وادی ایمن گهی رسد به مراد که چند سال به جان خدمت شعیب کند وادی ایمن ولی اینجا بیدار دید که ایمن نتوان بود این سیل دم آدم که در این منزل خواب هست بفر محشوب ایان میگذارد بر تو ولا کن همین بیند از آن بسته نقاب همی بیند از آن بسته نقاب این, این, این اصل مذب است که همه افراد و شهر قابلیت دیدار جلوه حق رو دارند. فقط شرطش اینه که آینه دلشون رو صاف کنن یعنی از تمایلات نفسانی و جسمانی درخیزن و هوا و حوث و گرفتاریای روزانه نباشند، وقتی آینه قلبشون از زنگ تعلقات جسمانی پاک شد نور حق درش میتابه این همین میگه معشوقه ایان بر تو داره میگذره اگر تو نمیبینی برای اینکه اینه غیری هست اونجا چون غیر هست او هم نقاب هست با بگنم کن بر رفت منگین تو تا و عرقی در آتش شوق از غم دل قرب گلاب است بله سبز استر و تا دست از سر آبی که جهان جمله سراب است بله در کنج دماغم مطلب جای نصیحت تین دوم شکر از زمزمه چنگ و رباب است. رباب, رباب. را از دمزمه چنگ و رباب حافظ چشه در و رند است و نظرباز بس طور عجب لازم ایام شباب است احسن قیده است سریحا از این مطلب این در جوانیست است. این حافظ آشغ و رند و نظربازه بسیاری از چیزای عجیب و غریب روز لوازم ایام جوانی. یعنی جوانیش بشواهی یک. دوم این که اینجا یک بیت داره در نصف دفتان که نیست در جاهایی من میخونم میفرماید که راه تو چراهی است که از قایت تعظیم دریای محیط فلکش این سراب است عرض کنم که راه تو چراهی است که از غایت تعظیم دریای محیط فلکش این سراب است این یک دوم این که گل بر رخ رنگین تو تا لطف عرق دید بر آتش رشک از قم دل قرق گلاب است تو در آتش شوق نسخه دیگه هست به نسخه های چرد نمیزن اینجا گل عرض کردم چند بار بازم عرض می کنم یعنی گل سر گل سخنش گلاب گیره یعنی این بردن میگرسنش دیک و میجوشوندنش و عرقشو در حقیقت گلاب عرق گله و میدونید که همه اینا رو در شیلاز همه اینا رو سنگه عرق عرق کاسنی عرق نسترن عرق نارنج، عرق بیت یعنی عرق فقط تختیر مشروب الکلی نیست عرق گل رو استثنان بهش نمیگن عرق گل میگن گلاب یعنی آب, آب گل اتفاقا در انگلیسی و در فرانسه هر دو هم میگن آب گل در انگلیسی که رز واتر میدونید در فرانسه هم هست او دو رز یعنی آب رز و میگه که گل این که غرق شده از آتش دلش غرق گلاب شده این از رشک عارقی که میتونهش خیلی تشبیه زیبه خب خیلی من دیگر آقای بوستانی به من میگفتش که نوبت خوندن منی ولی نایمده هنید میاد میاد میادش شما آقای صداعت پر بلاخره قایب بودین حالا ازال زلفت هزار دل به یکی تار مو ببست زلفت هزار دل به یکی تار مو ببست راه هزار چارگر از چار چارگر راه هزار چارگر راه هزار چارگر از چار سوی چارگر یعنی کسی راه بیدی می کن برای علا چپاش؟ بله تا آشغان به بوگ نصیمش دهند جان بخشود نافع و در آرزو ببست بله شیدا از آن شدم به نگارم چو ماه نو ابرو لمود و جلبگری کرد و رو ببخش بله ساغی به چند ساغی. ساغی به چند رنگ به چند رنگ که ساغی به چند رنگ میان در پیالری این نقش ها نگار که چه خوش در کدو در کدو ببخش مرخص کنم که در شیراز این کدو رو میگم کدو. و کدو و سوس سوسکه. سوسکه تو آشپزونه. و ما در فارسی کدو یا کدو و هر حال. و چنان که میدونید دو تا نکته است. یکی مال این که مال این بیت که مال بیت بالایی بعد بگم براتون. یکی این هست که چنان که میدونید ما شاید هیچ میله ای و کدو انواع و اقسام نداشته باشیم. از اندازه یک انجیر داریم تو چیز این ندارید. با گردن دراز با گردن باری یه نوع کدو هست که لیف حمام میشه دوستاشو میکنن بسایدش فقط الیاف مثل علیافه های نایلونی که لیف میزنن باشه بعد کدو تنبل کدو زرنگ کدو حلوایی کدو شیرین کدو غیر شیرین یه نوع کدو که من بچگی کاملا به یاد دارم اونای ما متضعیم بودن، اهل شعاب و این قبیل تو حرفا امول خواهست و اینا زهرمار نمیکردن اما قلیون میکشتن و به جای توزه قلیون یه نوع کدو بود من نقاشیم هم خیلی بده ولی به حال کدویر این شکل سرش خیلی کچی بعد این اینجا فقط به این سالوین با باز چهار قسمت میشد چیزش چهار تا ترک داشت و پوست کلوفت به کلوفتی مثلا چهار میلیمتر به حسابی آب دوش میکردن و سر یعنی میونه قلبونم میکردن و میکشتن این کدوهای این ترتیبی رو خیلی زیاد برای زرف شراب به کاز و روی این که این چهار تا تر که قشنگ هم این روی اون نقشه های زیبا میکشتن. من یادمه که نقشه های خیلی قشنگ روش بود و میوردن به عنوان کوزقلیون ولی خب اینا دوام زیادی که نداشت یا وقتی میونر میخواستن کار بزنن سرش میشکست یا بچه ها از جمعه خوده بنده برای اینکه که ببینن توش چیه میزدن میشکستن ولی توش ایچی نبود از این نقش ها که چه خوش در کدو ببست اشاره به نقش های روی کدوه که کدو رو روش نقشه میکشتن که قشنگ بشه در این حال اون رنگ ساقی به چند رنگ میاند در پیال ریخت مخصوص حقیقتاً رنگی میهی که نیست یعنی چند جور به چند ترتیب مختلف در زم یا آیتون میشه اینجا میشه که مجبور میشه یه چیزی کچی کرد. کچی بگم ساغی گری کار خیلی مهم بوده. و اگر اطلاعاتی به مطلب بخواه در کتاب قابوسنامه یک باب اختصاص داره به آداب و شراب کردن و هم در آداب ساغی گری کرد ساقی. بعد معرفت داشت. معرفت همی چی؟ <تصفح> <تصفح> یعنی اینکه نبض اون مجلس باید دستش میشه. چون مشروب آدم ها رو باطنشون بیرون. بعد یکی هست که یکی هست که عرباده یکی هست به بحث میشینه ملیس رو خراب میست. یکی دیگه بغت میکنین جود. یکی میخندید. اینا رو همه رو از ساقی خبر داشته از این مهمتر این که یکی عقب یکی جلوه یعنی که مقداری خورده یکی تازه از راه رسیده اگر به اون اندازه اون آدم از راه هر چی میده به اون که قبلا هم خورده بده اون بعد شروع رو شروع نرسید که یعنی نرسیده این نگهداری اینا و حفظ انتظام مجلس و در نظر داشتن عادت اینا و رسیده که از ننه به کارشون وظیفه ثابت که وظیفه وظیفهی بسیار بسیار مشکلی است و یکی از کارهایی که برای این کار می این بود که جام جام شراب هفت تا دا خط داشت که خطاش افتاره میگم اسم خطاش و برای هر کسی باید می این زرفت این بود چقدر تا که خط باید بهش بیدن و اون وقت اگر چون قرار بودی که به همه تحراب بکنه و بده اون کسی که یه خورده جلو بوده باید کم میریخته و پایین تر میگرسه اون یکی که عقب باید جامشو سرشارتر میدهده تا برسه یه اینا رو پشمختانه مرموم عدی بول ممالک چیز کرده به دو طبیت در رو راحت و دوستان میتونن اون دو طبیت رو حفظ کنن و تمام تا خط جام هست میگه که هفت هفت داشت هفت هفت داشت جام جمشینی هر یکی در صفا این قطعه چند بیته من فقط این دو بیته محرووطه به کار خودم هفت داشت جام جمشیدی هر یکی در صفاچ و آیله جور و برداد بسره عشق و بعضی از اینا معلوم معنیش چیه بعضی هم معنیش رو من نمیدونم. نمیدونم معنی داره بنده بلد نیستم جور در حقیقت معرب گوره و گور قسم فیروزاواد فارس که جایی هست در فارس میگن فیروزاواد را زیر خوب میدونن این قسمش فیروزاواد نفته شده گور معربش هم جور از اون دوله دیلمی خیلی از مرگ بدش میمره قشی هم بودی، سر خشت اصلا از اسم مرگ و از مردن و از تشریر جنازه و از این حرفا داشت. اینه که از, از این اسم، این غور بعدش آمده گفته اصلا شده هم فیروز آباده, فیلوز آباده. اسم اصلای فیروز فارس، ور یا جون این که مالی. بغداد و اصلا روشن از رق یعنی خاطف ولی من معنیشون نکنم عشق نه شاید لقدر بادشان عشقانی کاسه گرم که معلومه فرود اینه و انه دراتا یعنی آخرین خط جام بنابراین جام پر پر که از سرش بریزه تا خط جوره و معمولا تا خط جور جام رو پر نمیکرد آخرین خطی که پر میکردن خط برده و خاقانی اشاره می کنه می تا آخر بغداد ساقر دوستگانی خوردن یعنی پیمانه پر نوشتن در... یه قصیده داره در ستایش تربتی که از مرغد رسول میاره. این قصیده هم موجزاساس اصلا یعنی اصلا تصبر شادن نمی کنی گه حسی کسی بتونه این چطور حالا اون میگه بعضی بچه‌ها بودند که کلاس اصغر این قصیده اونجا مطرح شد میگه تا آخر بغداد تا ساغر دوستگانی خوردن دوستگانی همون کار شده استکان در فارسی یعنی دوست کامی و دوستگانی بعد کم کم رفته به روسی و تغییراتی کرده و بعد از روسی برگشته به فارسی شده استکان اینو یه استاد گرجی هست یه مقاله‌ای در مجله هنر و مردم نوشته و نوشته که این استکان فارسی از همون دوستگانی و دوستکامیه و بعد به صورت استکان در که اینکه علاقمندش اونجا میشه گیر بیاد من الان حاضر روزه نیستم که چی به هر حال یعنی جام دوستانه تاخت بغداد ساغر دوستگانی خوردم دوستان را ای در جرعدانای جرعه برای دوستان آوردن بر. عرض کنم که اینا خط جامع اینا را همه را ساقی بعد توجه می داشتیم بله بله ممکنم هست این طور باشه ممکنم هست این طور باشه اما به هر حال بله هر کدوم وقتی خود می رو وقتی خود می رو ازش معنی و استخراج می که درست هم از صد تا کتاب هست گراجش زده تویییست که از خطای جامان بتونن مراحل مختلف این استخراج بکنن ولی در این حال در عالم مادی ظاهری خارجی هم این هفت خط در جام وجود داشته و ساقی ملاحظه این مطالب رو برای حفظ نظم مجلس میگساری به عهده داشت. <تصفيق> شاید همین باشه این کامله شاید اصلا هفت عدد کامله و خواست هفت رو عنوان عدد کامل تو رساله اخوان صفات خاصم جو تفصیل حرف میزنه ایناست که هفت به طور کلی نشونه کمال هفت اصلا عدد کامل این مفیدهم شد که دوستان در جرئد در ساقی به چند رنگ میان در پیال ریخ یعنی به چند ترتیب یکی رو با مهربانی، یکی رو ناز کردی یکی رو خودش رو لوس کردی یکی کم داد، یکی رو زیاد داد به چند رنگ میان در پیال ریخ یعنی این بایلله می اصلا دو رنگ باید نیست بعدان توی یک کدو که دو رنگ می نیست این نقش ها ببینید که چه خوش در کدو ببست یعنی با این یه دونه کدو یه شراب که د داره میرو میده به دوستان ببین چه کارها کرد و چه دقایبی رو در نظر گرفت و عمل کرد مست میشه بخنید یارب چه قمزه کرد سراغی که خون خون با نعره های در گلو ببست مطرب چه پرد ساخت که در پرده سما بر اهل وجد بر اهل وجد حال در درها... دره... های او ببست حافظ هران که عشق نبر زید و بست خاست احرام احرام, احرام توفه کعبه دل بی وزو ببست نمیتونم که سراحی بازی نوعی چیزی شبیه تنگ که از سفال می ساختن. سرامیک با گلوی بسیار تنگ و تایه بزرگ مثل تنگ هستش الان بروش اینوش من سراهی و این سراهی یه اسم دیگه هم داشته بول بله بول بله اسم صوته یعنی چیزی که بال بال بل وقتی میخوام بریزن اسم اون صدای پلا پلا که میکنه اون مناسبتی کهش میکن بول بله یعنی بول بول بول بول صدا میکنه وقتی این هم این همین رو اشاره میکنه میگه که اینجا هست چه نقمه کرد حالا اونجا چیز دیگه است. به هر حال میگه سراهی چیکار کرد چه چی صدایی داره که خون خم با نعره های قلقل در گلوش گرفت و بعض پرده دوستانی که اهل موسیقا باشن عربا این کلمه موسیقی رو من خودم اول باری که از یه عربی شنیدم خیلی تعجب کردم اونم موسیقی گفت موسیقی و موسیقیان نزدیک‌ترین صورت به موزیکا اصل کلمه به هر حال عرض کنم عرض <تصفح> کنم که کسانی که موسیقی آشنا باشن میدونن که اون زه هایی که به دسته تار یا ستار بسته میارنش میگن پرد و سازهایی که دستشون بلنده اگه پرده نداشته باشه نمیتونه میزن مگر خیلی استاد باشه طرف که پرده ها رو هماره حفظ باشه بایلا از این تهی دسته سازتا اون بالاش نمیتونه که پرده رو حدس بزنه در حال که ویولون پرده نداره چون خیلی جای رفتن دست با لپانی تو کتاست این یه معنی پرده است پرده به این معنی هم هست به معنی پنهان کننده چیز دیگر هم هست و این همه اینا رو اینجا در نظر گرفته مطرب چه پرده ساخت چه پرده ساخت یعنی از خودون آه... آهنگ زد خودون دستگار زد از خودون دستگار مطرب چه پرده ساخت که در پرده سما بر اهل وجد و حال در های حوبه و ظاهران مطرب چنان زده بوده دوستان نفسشون در سینه ها یعنی دیگه صدا از کسی درمین بکنه ماتوندن از بس قشنگ میگه این چه ای بود زد که اهل و حال که قاعدتاً و سرخوشی بکنن و هیاهو بکنن و سر صدا بکنن یه دفعه همه نفسشون تو سینه حب شد در هایهو برشون بستشون دیگه چیزی مثل این که نداره کلمه احرام رو نمیدونم بیرفته گفتم یا نگفتم به هر حال احرام عبارد هست از, از حالتی در یعنی اون حالت بعضی کارها به آدم حرام دو جور هم بیشتر. یکی احرام نمازی نماز روی الله اکبری هست که نماز با اون شروع میشه بهش میگن تکبیر اطول احرام میگید چهار رکعت نماز شا به جامعه آرام قربتن الالله الله اکبر وقتی الله اکبر گفتیم سما وارد نماز. وارد نماز که شدید خوردن برای حرامه. رو رو از قلبه پس برای تون حرامه سخن گفتن جز به کتاب خدا برای تون حرامه حرکت کردن جز برای مسائل نماز با اون تحتیبت کس برای تون حرامه و این حالت احرام یعنی حرام شدن باقی میمانه تا وقتی سلام بدید نماز گفت سلام که دادید از حالت احرام میدید یکی اینه یکی هم در حج در حج احرام طول میکشه یک جایی هست و اون لباس حج که دو تا است برای مردا و یا برای سه تا درست برای رو من نمیدونم مثلا اصلا علم ملایی ندارم این اصلا نون ملایی هم که نخورد این از که بلدین سمنه میبخشن و هر حال ارز کنم که دو تا پارچه لباس می و از این ساعت محرم میشه. این احرام شرایط خاص دیگه مثل نمازی که حرف نزنن، حرف نمی دعا می حتی شام میخورن خورن، ولی در حال اهران، در این حالت عطر زدن برشون حرام. خوشتن هر جانوری، ولو یه دونه پشه اینجوشون بشین یک دست بزنن پشه بی میره، این حرام. نزدیکی با زن خوش، برشون حرام. و موارد دیجایی هست، من حالا بیادم نیست. هر کدوم از این کار راغی بکنن، باید یک عثمان برای جبران تقصیرشون بکنن و این حالت ادامه داره تا وقتی که تمام کاراشونو بکنن طوافشون رو بکنن سعی بین صفا و مروه رو بکنن و برن عرفات و اونجا غسلن چون قربانی بکنن بعد بیان تقصیر بکنن به قول خودشون تقصیر یعنی کوتاه کردن مو برای کسانی که مکررن رفتن و تراشیدن مو برای کسانی که دفعه اول مشرف شد بعد از تقصیر اونا از حال احرام خارج بله بله بله اونو گفتم که گفتم که عمر برای اهل سنت حرام کرد. ولی شیعه میخونه. من بله خاند. احرامی احرامی بش. علاقه در فارسی بش میگن احرام نه عربی. هر حال احرام توف کعبه دل یعنی تواف کردن کعبه دل و احرام ری کسی که حافظ هران که عشق نوردید و با اصل خاص تبیوس ناب نیست که آدمی بدون بوزور و بدون تهارت بخواد محرم میشه برای طواف کعبه درست اه. نه اون که کاملا غلط, غلط. نسخه خالقالی خیلی غلط زیاد داره خیلی خیلی مرحوم غزبینه مقدمه نوشته نوشته که این پر از غلط خود مرحوم خالقالی نوشته نوشته این چاپ شده من توجه نکردم اون خلصه پر غلط شده. <تصفيق> بنابراین اسم اون جایی که اولاً از ریشه وقت حافظ این طاهر آورده نام یه واقعه آن غیر تاورقه صوفی به خراسان اوقات بریم شط و تامات به بازار و خرافات بریم سوی رندان گلندر به رهاورد سفر دل به شطاهی و سجاده تامات بریم با تو آن اه که در وادی عیمن بستیم اینا که من جاهایی وادی عیمن این حرفا رو توضیح میدم من که مکرر در حافظ تکرار میشونم اگر نه خیلی حرف حسد هم بزنیم جو وقتش نیست. با تو آن اه که در وادی عیمن بستیم همچون موسا عره نیگوی به میخواست برای اره یعنی خدا رو خود تو من نشه خدا هم که مست جوابشو بودش کفتستش که تو ترانی یعنی هرگز من نشه نه حرف دروش اینا رو میگه چهار تا بهش گفتن لن لن, لن یعنی هرگز من نشه تحصیل موساقزوشو زیاد کرد. خدا دیدنی نیستش که که که من ببینم هده. جواب داد که هرگز ارز کنم که میقات یعنی اون جایگاه اون جایگاه معینی که این جا که یه جوانتی عظیم و یکی عظیم و یکی عظیم اینا باید در این چهار جا،, جا هر کور ما از هر برنیان را حال احرام درده اون جایگاه رو شما می‌خواهد خب دیگه از جوانان رتن آقای صده شما زحمت می‌کشیم؟ شای خدا چه صورت خیلی غذابی زیباییست خدا چه صورت عبدوم یه دل گشه او تو بست پیدا می‌کن نا عجلی نداریم اگه حال انجاویه و ح هر حرف اول مصراتش فقط به ناسش خدا تو صورت افروی دل تو بست بشا به من منند در پرشمهای تو بله کار ما و دل اون که صد گره بگو نسیل سوند. تو دل در رقی تو بست هزار سر به چمن را به راه به راه نشان زمان تا نرگستو غوهایی تو است بیرد منر آب بند تو دوران چهر راضی کرد وی چه سو که سر رشته در رضای تو هست نش میگه من را آب تو دوران چهر راضی کرد یعنی من حاضر شدم که در بند تو بمونم گردش زمانه رضایت منو راضی کرد که در بند تو بمونم ولی چه فایده تو راضی باشی من در بند تو بشن. مرا بنده تو دوران چرخ رازی کرد ولی چه سود که سررشته در رضا تو است بله تو ناوافته که من مان گرت تو که با سر زور تو, تو خود خیاو دیگر بی ای بساز نگرد که دل کہ دل در نخر درست دل و بحث کنی خطا می جا که دل امید در وفات تو است ب ما را او کو چمن راز دل به دور آرام سحر که آن چه دل با جهان که دل هر دو در نباب دل هر دو در دهان تو دل هر دو در نباب تو بس این تو نسخه خوان این بیت با اون زبانه تا قصب نرگس رو هم شودن مرا و مرغ چمن را از دل ببردارم زمانه تا قصب نرگس و قوای تو بسل ای باشه بنده هم به اون ترتیب از نفس در در چیز در تو سه از جوانی من اثر است ولی حالا حافظی به تا آخرم بخون هم از نسیم تو می گشاوشی ربا شخون چه که دلن در هوای دلن در ره دلن هوای هوای به دست جورتو گفتن ها هم رست به خندی که حافظ برو کپای تو بست تو که استفام این کی پای تو بست کنم که قصب ببنید جامعه کتان و اون قصب زرکشی نیگوده که میگه این, این صورت اینه هم از دل من آرام برد هم از دل مرگ چمن هر رو که یه چیز نمیتونه آرامشونو بذاری میگه زمانه وقتی جامعه قصب نرگست و قبای تو که طبعا از قصبی بس به واسطه نرگس، از مرگ چمن آرام برد به واسطه قبای تو از دل من آرام حال خب اون هست مرا و سررب رو به خاکی راه میشن بازم مرا صحیح ولی سر به چند میشون ناسه خاک میشنشه از به قثر ذکش قرار کردهه خیلی خشنگ اما اگه به ملاحظات بعد این ایراده ها اصلا به نظر دن می م نسخه جلوش باشه ها وقتی نسخه جلوش باشه میبینه که اونجا دو تاست اینجا هم دو تاست این ل خو وقتی اونجا باشه مرا سر و چمنند یا <مارغ> مرغ چمن دو تا این دو تا باید دو عامل اون طرف اسباب بردن آرامشون بشه مرا و مرغ چمن را ز دل ببردارم زمانه تا قصب نرگس و قوای تو بس لغونش مرتبم یعنی مرغ چمن به واسطه نرگس منم به واسطه چیه کنم چه حیات دگر. حیات دگر بودی بیت ما قبل تو خود حیات دگر بودی ای زمانه و سال اینجا هست این نسل این و سال هست. هر هرچی باشه حیات دگر اینه یعنی عمر دوباره و عمر دوباره که ندیدم که فروخی سیستانی اون قطعه خیلی قشنگشو امیدارم از بر داشته میگه خواستم از ای دو بو سه بو. گفتم تربیتی کن به آق لطف خستی را گفت یکی بس کن باید بگم که فتنه یک معنی شد همه تون بلدین یه معنی دیگر فتنه معنی مفتون و فریفت است تو حافظ آمده تو سعدی آمده فتنه من من چنان فتنه روی هست که زی خود خبر یعنی آشهده و فریفتهی دو خواستم از لعلوه دو بوسه و گفتم تربیتی کن به آب لوت خسی گفت یکی بست کن اگر دوستانی فتنه شدید آزموده این بستید عمر دوباره است بوسه من هرگز عمر دوباره ندادم این حیات دیگر بودی تو خود حیات دیگر بودی ای زمان و سال ای نسلین و سال یعنی تو مثل عمر دوباره ای ببین چقدر من اشتباه کردم که منتظرم دوباره این عمر دوباره برگرده من نمیشه چیزی تو خود حیات دگر بودی ای زمان و خطا نگرد که دل امید در وفایتو بود نمیشه چیزی بسیار بسیار بسیار من کنم که دوستان خانم موزدی شما میخونین؟ کلوت گذیده را شاه قزل کلوت گذیده را به تماشا چهار جس این ایراج خواننده هم خونده چه خونده؟ سگاهه؟ خونده. گذیده چون هست جانا ای حاجتی که تو هست با خدا آخیر. که اجازه دینا همین چیت کنم این را خدا را یعنی برای تو. را یعنی برای و ناچار و این سوزن رو دوباره بذارم اصری این دا اینو گفتن این و دوباره دوباره را در پهلوی. را راد به معنی سبب و علت من میگم که به آقای گرامی که چرا دیر اینجوری میشه چه قید استفان را چرا دیر یعنی به چه علت دیر با ما در زمان فهر پارکینگ پارکین جانه داشت چی میشه؟ آقای گرامی جواب میده به رای این که به رای یعنی به سبب برای هست پس چه را؟ از چه ازتخان برای را؟ برای مرکز از هست، به حرف اضافه برای را چه چرا یعنی به چه سبب به راه یعنی به این سبب بنابراین روان آسان خودش معنی برایت نه اینطور معنی برای از. خود برایت واس خدا را یعنی برای خود خدا را تم نشین با فرق بفروشان یعنی برای خدا این بحث ها خدا را به سوف برای خدا که در اون در اینا رو یه معنی برای است یه معنی راه معنی دیگرم داره که حالا اینجا جاش نیست بفرمید خانم در حضرت کریم در مجلس آدم بزرگوار و آدم بخشنده دیگه سوال لازم نیست پوناه لازم نیست بله محتاج خون ماست محتاج یکی از اینا ها چیز شد؟ بنده قصفه انجام بداریم <تصفيق> محتاج بسته نیست که از قصد خونه ماست. ما چون رخت از آن توست آه ارسونم که قصد ایر از اون معنی یکی میدونید. یکیش به معنی عرض و یه ترکیبی داریم در فارسی قسته برداشتن اینا حالشون مثلا باقا با با میگونیش که ها مالیات گردن یا خونه ما خراب شد بزن درم این روی ست دو سزمینی روشتن مثل پلاکار بلند میکردن تو خانه حاکم از پنگوری اتاقش ببینیم این عمل روش میخواستن قسطه برداشتن یعنی قسطه رو بلند میکرد و قسطه معنی عرضها و شفاید این یکی یکی هم اینکه اینجا هست به معنی بحانه هست میگه اگه قسط داری ما رو بکشی قسطه نمیخود بگیر بحانه دیگه لازم چیست توقرا کبرا میچینی؟ بحانه لازم ندارید محتاج قصه نیست کرد قصد خون ماست رخت رو هم که بهتون گفتم رخت گفتم وانی وسایل وانی همه وسایل و مثال زدم رخت خواب لاحاف خود دوشک و بطیکای که رخت که نیست یعنی وسایل خواب رخت سفر خورجین و چندون اینا رخت سفر تمام وسایل هر آدمی میشه رختش میگه چون رخت از آن توست اصلا مال تو در حیرت خداست دیگه اختیار بشر دستی تو جهنم برو چشم بشت برو چشم بمیر چشم زده بمون چشم دیگه, دیگه قسطو نمیخون محتاج قسطه نیست گرد قصد خون ماست چون رخت از آن توست به یک ماه چه آجت هست بله نماز اظهار احتیاج خود اصل اونم که جام نما رو حافظ جام گیتی نما میگه هوشا و حضوق و مست غرور، جام گیتی نما و خاکن جام جهان بین میگه، گفتم این جام جهان بین به تو کی داد گفت آن روز که این گنبدین جام عالم بین بهش میگه ماده نوش از جام عالم بین که بر او رنگ جم شاهد مقصود را از رخ نقاب انداز جام جم بهش میگه سالها دل طلب جام جم از من جام کیخسرو هم میگه میگه که گوی خوبی بردی از خوبان مخلو شاد باش جام که خسرو طلب کفراسی ها بندار و اینا همه یه معنی داری در حقیقت این جام مال که یعنی اون جامی که جهان نماست مال که تفصیل قضیگی هم در داستان بیژن و منیجه شاهنامه فردوسیانه. اونجا می که وقتی که ویژن پسر گیو و نوه دختری رستم رو گرفتن و حبس کردن تو چاق علت عشق منیجه دختر افراسیاب ننش که خب دختر رستم بود تو سرمغزش رو جلو باباش و گریه و زاری که بچه من یه دونه پسرم داشتن دوتایی بیو پسر عرشد و پسر بزرگی بودر اون ناراحت که بچهش چه شده؟ خبر داشتن زنده هست مورده هستی کیخسرو گفت سبر کنید تا اول فروزین بشه اولا کیخسرو با ماورات طبیعه اونجوری که رابطه فردوسی سریحا نمیگه ولی طوری که فردوسی حرف میزنه میگه که کیخسرو گفت میجن سالم نمورد اینه مثل که اطلاع داشته از با ما برای مردم دوم این که صبر کنید پروردین بشه اول تحویل سال من در جام گیتین نگاه کنم ببینم ایجن کجا جامی که توضیح میده یه چیزی شبیه به این جام چلکلید ما جام چلکلید دیدی. این دو آنویسا و این خانوما و زنهای مقدس و اینا دارن یه جامیست وسط شکل برآمده است وسطش مثل بوق اومده بالا دورش خط کشتن و تلسم و دعا و عدد و از این حرفا یه چیزای کچوروی هم شبیه کلیر انداختن توش که تو این دعا نوشتن بعد آب میریزن اون تو دعا میکنن میدن مثلا ناخش بخونه خوب بشه این حرفا فردوسی توصیفی که از جام که خسرو میکنه یه همچی چیز یه نقش صورتهای فلکی رو همه رو بر اون نگاشته بودن اون چکرده بودن اون چکرده بودن همین سیارگان و وقتی که تحویل شد، چه رفت نیایش کرد بعد از نیایش آمد، این جام رو خور از می کرد و خورد و بعد بود دوباره باز می کرد توش الان, الان من دیادم نیست خود دوستان نگاه کنم در داستان من میشه. بعد در او عکس تمام گیتی نموداش در همه جا رو گشت و دید که ویژن در توران در کشور سوقد در بونه یک چاه تاریکی اونجا زنده و بعد گیر رخواست و گفت یاره راحت باشه و بیشن زنده است و در فلان جاست و در جای تاریکیست و به رستم بگو بیاد رستم که میاد میگه که هر چقدر صفاح و بوجه میخواد خب برو این بچه رو بیاد رستم میگه قربان این کاره لشگر نیست و تدبیر نلش کرد این جام بین و جام بین و جام کیخسترو همه اینا یکیه اما جام جم چیه ظاهرا جام و جم به دلیل شباحت لبزی که با هم داشتن جام کیخسترو تو شهر شده جام جم که جام جم تا جواهدتر میشه گفته جام کیخسترو این دلیلش و اما در اصطلاح عرفانی میگن جام جام که نقش جهان درش نموداره دل عارفی سالها دل طلب جام جم از ما میکرد وانچه خود داشت زبیگانه تمنا میکرد این اشار است و اینو من که من روی هوا بگم سریحاً صناعی غزنوی در حدیقه, در حدیقه میگه به یقین دان که جام جمع دل توضیح بیشتر میخواد کتاب بانگ جرس اثر مرحوم پرتو علوی اونجا را جام جمع توضیح مفصل نه اظهار احتیاج خود آنجا چه حاجات نه خود یه ذریع زیادی میشه این جوری برای اظهار که احتیاج خود آنجا چها حده در اظهار احتیاج آنجا چها است. یعنی خود تبدیل میشه به یه پاراجور شعری که فقط برای چیز کردن وزن اینجا چه پین در х Härی اگه بگیم اظهار احتیاج خود آنجا چها حاجات هست معنی بایدم ب رو این شد تکیه آن شد یعنی اون دوران گذشت آن شد که بار منت ملاخ بردنی بله میگه من دیگه با منت ملاخ بچم چه کنم گوهر دو دست همه کاری بله این برو که احباب حاضرم حاضرم به, وزیفه به معنی مستمریس. اون معنی که حالا ما به معنی میگیریم وظیفه میگه ای آش چون لب روح باخشیار میداندت وظیفه. حقاظا چه ها جد بله محاکا محاکا یعنی حقایت گفتم یعنی جر رو رست کرد مدعی هم یک کلمه بگم مدعی معنی خوبی نداری مدعی یعنی کسی که دعوی میکنه یه چیزی رو به حال اینکه نداره اگر کسی داشته باشه و بگه یعنی بگه مثلا بنده بگم که من خط می که از خط نمیدونم میر بهتره و بتونم بنویسم اینو مدعی نمیشه مدعی به کسی میگن که دعوی نیست چیز خوب یه نوزله، در دیوان حافظ، هیچ معنی خوش نده بزل بعدی رو به کی بگیم بکنه؟ جوان مرد غصابی که تا الان نخونده بشه بخون شاب، بزل درجه یک رواغ منظر چشم من آستانه توست آستانه گرفته من اون درست درستترم برای فرود آمدن برای فرود آمدن آستانه, آستانه مناسب خیلی از نسخه ها آشیانه سالی است آستانه مناسب تره. از سه و چهار و پنج و شیش و هفت و هشت و نه و ده نسخه من رو خانداری آشیانه داره تاش آستانه داره باید خانداری به علم استادی خودش آستانه رو ترجیح بل و بعد برای فرود آمدن رو آستانه فروت نزمین فروت میانده هوا که نمیرم. بله بفن دقا به منظر کشم مناستانی توست شرم نمای و فرودا که خانه این وضع رو خواهش میکنم کاملا دقت کنیم و منم هیچی نمیگم تا این تموم چه بعد اون وقت حرف بزنم بفن به دلت خالفت از آرفان دو دل لکیفه های اگر زیر دامدانه طلب وصل بله این بلبل بله خوش که در چمن همه گلوم یه آشغانی دارد خلاج دل ما به لب حوالت کن که آن مفره یا مفره که آن یا روز در خزانی دارد علاجم هست علاج زعف دل ما به لب حوالت به تن و قصرم از دولت ملادمت هست ولی بود جان خاک آستانه تو منم نیام که دهم نبرد دل و هر شوری در خزانه به متر تو و مهر تو خزانه خزانه درف خزانه به مهر تو و نشانه تو تو خود چه نو که ای شخصا به ورشین که توسنی توسنی که توسن تو فالک جان می تو توسن یعنی اسب سرکش چه جواب من که بلغ چه جواب من تو یا آقای من که بلق زد سپنه شعبت باز از این کیم که در انبانه بهانه توست باید سرود مجلسه دکنون بلک بلق سارد که شعر حافظ شا... شیرین سخن ترانه توست خیلی این شعبده هست البته. شعوزه و شعبده ولی از قدیم ترین اگه تمام این چیزایی که ما حالا میبینیم از خیلی قدیم چیز مثلا کلمه اون شهر معروف سوریه دمش ما الان میگیم دمش ممکنه تازه باشه ولی نیست من امروز بود دیروز بود، یه شعر خیلی قدیمی مول مثلا یه شاعری مثل خاقانی یا کس دیگر دیگه خود سعدی قرن هفتم میگه چند قرن سال شدن در دمش یاران پراموش کردن عشق اگه اینو بخون دمش غلط بنابراین کاملا پیداست که اینو دمش می‌خونن از همون وقت یا مثلا ما میگیم کافر ولی میدونیم کافر اسم فعاله از اثر کف نیست در مولانا مثلا نگاه میکنیم و می‌بینیم که با مثلا خر، با تر، با بر، کافیه شده پیداست که از اون روزگار کافر می‌گفن، کافر نمی‌گفن این شعباده هم همین وقتی به گردین، از قدیم اینو میگفتن اما ها اون که از عربی میاد فارسی ما به, به, به تمایلات زبون خودمون برشون. اما فرض کنید که دور از حالا عووزه به بلا تشبیح به قول قدیمی ها بنده باشم خاجه حافظ و نظرم داشته باشم به کوی و گذر با روی در ایام جوانی چنان که ارتدانی و هر حال در آسیاب به نوعی کل داره ممکنه بنده هم که خاجه حافظ در جوانی، با یک کسی، با یک دوشیزه زیبایی، بالاخره مرد محبتی باخته باشم، یا لعقل خودم فکر کنم. فکر میکنیم که این غزل رو اگه ساخته باشم، براش فرستاده باشم، ایرادی داره، عیبی داره.